برنامی از گروه جوان و فرهنگ به نام خدایی که مهر ورزیدن آموخت سلام کودکان افثانه ها درج در افثانه ها پند اون که یک قوم و یک ملت رو در برابر طوفان حوادث نگر میداره فقط قوای نظامی نیست انسان هایی که فرهنگ غنی دارند میتونن قهرها و هزارها در عرصه تاریخ بمونن و ماندگار باشن ملتی که پیشینه خودش رو نگر میداره ماندگار و قویه و در این راستا افسانه که از تونل زمان گذاشتن به عنوان بخشی از پیشینه فرهنگی یک قوم و ملت نقش مهمی در فرهنگ و هویت مردمان هر سرزمین دارن و حفظ اونها امری ضروریه افسانه زیبای تنبل پازردالو رو براتون نرمی کنم به روایت خانم فروغ بهادری از مسجد سلیمان تایفه شهنی برگرفت کتاب افسانه‌های بختیاری بختگاری ویکتوریا دقیقیان چیزی روزگاری در سرزمین بختیاری پیرزنی با پسر تمبلش می میکرد پیرزن روزها تو خونه مردم کار میکرد و شبها از پسرش تیمار تیمارداری میکرد چون پسرش اونقدر تنبل و چاق بود که همیشه زیر سایگ درخت زردالوی حیات خونشون مینشست و از جاش تکونم هم نمیخورد همونجا هم میخورد و هم میخوابی حالا بشنوید از پادشاه اون سرزمین که همسرش سالها قبل مرده بود و از اون دختری به یادگار داشت و بعد از سالها زن دیگهی گرفت که میونه خوبی با دختر پادشاه نداشت و مدام اون رو مورد آزار و اذیت قرار میداد و هر روز با بهانه ای سعی می کرد دختر رو از چشم پدرش بندازه و بین اونها فاصله ایجاد کنه تا اینکه که دختر بزرگ و بزرگتر شد و هر خواستگاری که میومد دختر حاضر به ازدواج با اون نمیشد و این بهانه ای شد که نامادری به نزد پادشاه بره و به اون بگه که ای مرد تو هیچ میدونی چرا دخترت به تمام خاستگاراش جواب رد میده و حاضر نیست ازدواج کنه؟ پادشاه فکری کرد و پرسید نه چرا حاضر به ازدواج نیست؟ زن گفت چون میخواد وارث تاج و تخت تو بشه پادشا با شنیدن این حرف یکی خرد و با تعجب پرسید چی؟ وارث تاج و تخت من بشه؟ زن با بدجنسی تموم به دروغ گفت بله بله بله من خودم بارها این حرف رو از سبون شنیدم من که تو عمرم دختری به این تمکاری ندیدم پادشا که سخت ناراحت شده بود با عصبانیت گفت دختری نمک به بخروم حیف حیف اون همه زحمت که برات کشیدم حالا دیگه کارت به جایی رسیده که میخوای تاج و تخت منو صاحب شی ها؟ باشه باشه حالا که دلت تاج و تخت میخواد هم. چنان تا تختی نشونت بدم که تو خوابم ندیده باشی دختری خیر سر تمکار پادشاه بعد دستور داد که دختر رو به نزدش بیدن دقیقه بعد دختر به نزد پدرش اومد و با تعجب پرسید چی شده پدر؟ اتفاقی افتاده؟ پادشاه در حالی که خون جلویه چشاش رو گرفته بود با عصبانیت گفت من پدر نیستم دختر یه خیر سر دختر که انتظار شنیدن این حرف رو نداشت با تعجب پرسید شما؟ شما پدر من نیستین؟ آخه چرا پدر؟ پادشاه فریاد زد. گفتم من پدرتون نیستم و اینقدر نگو پدر پدر پدر دختر با گریه گفت من من من نمی دونم نمی دونم که پادشاه با فریاد کلام دخترش رو قطع کرد و گفت تو نمی دونی؟ باشه باشه باشه الان بهت میگم و بعد با عصبانیت گفت که میخوای وارث تاج و تخت من بشی ها؟ دختر با تعجب پرسید من من تاج تخت شما کی نرف رو زده پدر من من هیچ وقت از ننش... پادشاه با فریاد کرام دخترش رو قهد کرده گفت گفتم به من نگو پدر دختر باز هم برای پدرش توضیح داد که هیچ وقت قصد تصاحب تاج و تخت پدرش رو نداشته و این حرف دروغی بیش نیست اما هیچ فایدهی نداشت و پادشاه افثانی ما که سخت عصبانی بود و دروغ زنش رو باور کرده بود با بیرحمی تموم به دخترش گفت از امروز دیگه من پدر تو نیستم و تو باید از این قصد بری بیرون دختر هرچه التماس کرد فایده نداشت و پادشاه به وزیرش دستور داد همین فردا دخترش رو به عقد تمبلترین مردم سرزمین در بیاره. وزیر به همراه چند نفر تمام سرزمین بختیاری رو گشتن و گشتن تا سرانجام تنبلترین فرد رو که همون پسر پیرزن بود یعنی تنبل پازردالو رو پیدا کردن و فورا دختر پادشاه رو به عقدش در آوردن پیرزن که از این وسعت سخت تعجب کرده بود به دختر گفت دختر جان تو با این همه زیبایی چطور حاضر شدی زن تنبلترین آدم این سرزمین بشی؟ ها؟ آخه، آخه، تو دختر پادشاه، پسر من ندار و تنبل، جریان این وصلت چیه دختر دختر پادشاه ماجرا رو برای پیرزن تعریف کرد و بعد به پیرزن گفت مادر خواهشی از تو دارم پیرزن با مهربونی گفت چه خواهشی دخترم؟ دختر گفت مادر جان، فردا هر وقت خاستی برید خونه ها کار کنی سر را به نشونی که بهت میدم برو و از دوستم بخوا صندوقی رو که پیشش امانت دارم بهت بده و اون با خودت بیاری پیرزن با خوشحالی گفت ای به چشم دخترم ای به چشم و صبح روز بعد مادر تنبل پازردالو سفارش دختر پادشاه رو که حالا عروس شده بود انجام داد صندوق رو گرفت و به خونه برگشت دختر پادشاه در صندوق رو باز کرد پر از طلا و جواهرات و سکه بود مقداری از سکه ها رو به مادر تنبل پازردالو داد و گفت مادر با این سکه ها به بازار برو و سه مرد قویه رو که یه نفر از اونها بارش نمکه و یه نفرش که بارش تیغ باشه و یه نفر دیگه که بارش پارچه تمیز باشه بخر و به خونه بیار. پیرزن هم فوراً به بازار رفت و به همراه سه مرد قوی به خونه اومد. دختر پادشاه به کسی که بارش تیغ بود گفت شما باید هر چی گوشت اضافی و چربی زائد توی بدن تنبل پازردالوه ببری و دور بندسی و بعد به مردی که بارش نمک بود گفت و تو فورا جای گوشت های شده از بدن تنبل پازردالو رو نمک بباش و بعد رو کرد به مردی که بارش پارچه های تمیز بود و گفت و اما تو تو باید جاهای برید شده ی بدن تمبل پازردالو رو با پارچه های تمیز بمندی و چند دقیقه بعد هر سه مرد کارشون رو شروع کرد هفته گذشت و تمبل پازردالو به سلامت از بستر بیماری بلند شد و دختر فورا مقداری از جواهراتش رو به اون داد و گفت از امروز باید دست از تنبلی برداری و با این سرمایه تجارت کنی تمبل پازردالو که خودش هم از تنبلی خسته شده بود قبول کرد که به کار تجارت بپردازه دختر به اون گفت که قبل از اینکه کارش رو شروع کنه پیش حکیمی دانا بره و چند پند آموزنده از اون بگیره تنبل پازردالو به نزد حکیم دانا رفت و حکیم به اون گفت من سه پند به تو میدم اول اینکه هر وقت کسی رو دیدی اول تو سلام کن دوم اینکه در راه این سفر بدون فکر و قرارداد با کسی معامله نکن و سوم اینکه موقع شب وقتی که کاری رو بتونیدن هرگز نخواب چند روز بعد تنبل پا همراه با کاروانی راهی سفر تجارتی خودش شد مدتی که از سفرشون گذشت آب کاروانیان تموم شد و به نقطه ای رسیدن که چاهی امیغ در اون قسمت وجود داشت و برای اینکه به آب دسترسی پیدا کنن از تمبل پازردالو که تازه وارد و بی تجربه بود خواستن داخل چاه بره و آب بیاره تمبل پازردالو قبل از رفتن به درون چاه به اونها گفت حضرات من به شرطی داخل چاه میرم که با شما قرار داد ببندم و نصف مالتون رو به نام من بکنین کاروانیان که فکر میکردن تنبل پازردالو هم مثل کسای دیگه ای که برای آوردن آب به داخل چاه رفته و دیگه برنگشتن با نظر اون موافقت کردن و هر کدوم نصف مالشون رو به نام اون کردن و اما بشنوید از تمبل بله وقتی که تنبل پازردالو داخل چاه شد یه لفه به دیوی وحشتناک برخورد کرد تنبل پازردالو فوراً به دیو سلام کرد دیو که از این عمل تمبل پازردالو خوشش اومده بود گفت من اول خواستم تو رو بخورم ولی چون در سلام کردن پیش دستی کردی، از خوردنت منصرف شدم. تنبل پازردالو با خوشحالی گفت، جناده دیو، سلام کردن بر دیو زیبا و قدرتمندی مثل شما واجبه، من فقط به وظیفه عمل کردم. دیو؟ که بیشتر از تنبل پازردالو خوشش اومده بود با حیجان گفت آه حالا که من رو دیو زیبا و قدرتمند خطاب کردی من هم این گوهر شب چراغ رو به تو میدم و اگه خواستی میتونی آب هم از چاه ببری <تصفيق> تو آدم ازاد آگل و دانایی هستی تنبل پازردالو هم فورا گوهر شب چراغ رو از دیو گرفت و با ظرفی پر از آب از چاه خارج شد و نصف مال کاروانیان رو هم صاحب شد. روز بعد کاروانیان اینقدر رفتن و رفتن تا به صحرای بی آب و علفی رسیدن. صحرایی که می گفتن شبهنگام انبال آدم ها رو می بله. اونا وقتی به اون صحرا رسیدن دیگه شب شده بود و کاروانیان از تنبل پازردالو خواستن تا از انبال اونها نگهبانی کنه و تنبل پازردالو هم پذیرفت به شرط اینکه که کاروانیان نصف انبالشون رو به نامون بکنه و این بار هم کاروانیان پذیرفتن چون امید داشتن این بار تمبل افسانی ما نمیتونه از پس این کار بر بیاد وقتی کاروانیان به خواب رفتن تنبل پازردالو پند حکیم رو بیاد آورد که وقتی همه خوابن تو هرگز نخواب به برای اینکه خوابش نبره قسمتی از دستش رو برید و روی اون نمک باشید تا خوابش نبره نیمه های شب بود که زمین دهن باز کرد و تمامی انبار سروت و ثروت و شترهای کاروانیان رو بلعید تنبل پازردالو فوری میخیر در اون قسمت که زمین دهن باز کرده بود کوبید و راحت گرفت و کاروانیان از خواب بیدار شدن دیدند که تنبل پازردالو خوابه و چه خور و پفی را انداخته. و بعد متوجه نبود بالشون شدن. اونا با ناراحتی و عصبانیت تنبل رو از خواب بیدار کردند و سراغ امبالشون رو از اون گرفتن. تنبل هم تمام ماجرای شب گذشته رو برشون تعریف کرد. ولی اونا حرفش رو باور نکردن و تنبل از اونا خواست برای اثبات حقیقت، به نزد قاضی عادلی برن تا میون اونها قضاوت کنه بعد از ساعتی کاروانیان به همراه تنبل پازردالو نزد قاضی رفتن و تنبل ماجرا رو برای قاضی بازگو کرد قاضی هم دستور داد تا زمین رو بکنن و در صورت بودن انبار کاروانیان باید به وعده خودشون یعنی بخشیدن نصف اموالشون به تنبل پازردالو عمل کنه گروهی مشغول کندن زمین شدن و با تعجب دیدند که تمام انبارشون صحیح و سالم اون تو پنهونه. در این ترتیب تنبل پا زردالو افسانه ما یکی از ثروتمندان اون سرزمین شد. بعد از چند روزی تمبغ پازردالو به شهر خودش برگشت و با ثروتی که به دست آورده بود کاخی زیبا برای خانوادش ساخت و گوهر شبچراغ رو بر سر در خونش کرد. این خبر به سرعت به گوش پادشاه رسید پادشاه از سر کنجکاوی وزیرش رو برای تحقیق به اون روستا فرستاد وزیر بعد از مدتی به کاخ برگشت و به پادشاه گفت قربان درسته من خودم با چشمهای خودم اون کاخ زیبا و گوهر چراغش رو هم دیدم قبل یارم به سلامت با باید اعتراف کنم من تا کنون چون این کاخ زیبا و با شکوهی رو ندیده بودم صاحب کاخ باید مال ثروت زیادی داشته باشه که این کاخ رو ساخته و وزیر اونقدر از شکوه و جلال و زیبایی کاه گفت و گفت تا اینکه پادشاه تصمیم گرفت برای دیدن کاخ شخصا بونجا بره و دستور داد به صاحب کاخ پیغام بدن که پادشاه فردا برای بازدید از کاخ اون به اونجا شرفیاب میشه اخی تنبل پا با خبر شد که پادشاه قرار برای دیدن کاخش به نزد اونها بیاد مهمونی بزرگی تنبل پازردالو و همسرش برپا پا کردن و دختر پادشاه نقابی به صورتش زد تا پادشاه یعنی پدرش اونو نشناسه پادشاه به کاخ که وارد شد از دیدن اون همه زیبایی و شکوه به حیرت افتاد و تمبل پازردالو و همسرش به اون مهربونی و محبت زیادی کردن پادشاه با دیدن زن تمبل پازردالو به یاد دخترش افتاد و به مادر تمبل پازردالو گفت خوش به حالتون مم. که چنین عروس مهربون و خوبی دارین و بعد شروع کرد به گریه کردن پیرزن از پادشاه پرسید که نام پادشاه اتفاقی افتاده چرا گریه میکنی؟ پادشاه با بغز گفت عروس شما منو یاد دخترم میندز دختری که سالهای سال اونو ندیدم و مادر تنبر پازردالو حرف پادشاه رو قطع کرد و گفت کناب پادشاه خوشحال باشید که عروس من همون دختر شماست دختری که سالهای سال اونو ندیدین و در این موقع دختر نقاب از صورت برداشت و گفت بله پدر بله من دختر شما هستم شما منو به زور به آدم این سرزمین دادید و اون وقت تمام ماجرای زندگیش رو برای پادشاه یعنی پدرش بازگو کرد. پادشاه که فهمید دخترش هیچ وقت قصد تصاحب تاج و تخت و اونو نداشته و این حرف دروغی بود از طرف زنش یعنی نامادری دختر فوراً به قصد خودش برگشت و دستور داد زنش رو به سیاه چال و تا آخر عمر در اونجا بمونه بعد تاج و تختش رو به تنبل پازردالو سپرد و اونو وارث خودش اعلام کرد و در کنار اونها به خوبی و خوشی سالهاگ سال زندگی کرد افسانهٔ زیبا و پندامیز تنبل پازردآلو رو براتون نقل کردم